بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان موحد و یکتا پرست خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز باز هم برنامه بیستمیه درسای از قرآن و صنعت عقیده در قرآن و صنعت خدمت انتقدم الحمد الحمدلله و صلاات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و دوستان عزیز اگر فکرتان باشه در برنامه قبلی درباره محبت الله جل جله صحبت کردیم و گفتیم که محبت دو قسم است یکی محبت حقیقی است که محبت الله جل جلوه است محبت خاص است و او محبت طاعت است محبت عبادت است و محبت بندگی است کی مخصوص الله جل جلوه است و دوم قسم گفتیم که این محبت محبت مشترک است که گاهی محبت طبیعی است که انسان با قصا و آب زرورت داره و گاهی هم محبت شفقت است که انسان با اولاد خود با دوستای خود شفقت می داشته باشه و احیانا محبت اون الفات است که انسان با اقارب دوستان هم سیمفیا استاد شاگرد هم کار خود دوستی محبت می داشته باشه و این پروانه میکنه کنه این محبت ها به شرط که این محبت ها در جای محبت خالق جا داده نشه در این برنامه عرض میکنیم که تقاضای محبت الله جل جلاله چیز سوال ما است که تقال محبت الله جل جلاله چیره تقاضا کنه؟ اینال تقاضای محبت الله جل جلاله که د این برنامه سرش صحبت میکنیم محبت الله جل جلاله تقاضا میکنه که اول محبت او را نسبت به محبت هر کسی برتر بدانیم محبت او را نسبت به محبت هر کسی برتر بدانیم یعنی محبت الله جله جل روه بسیار قوی باشه و اله دینا اشد و حب الله. محبت ازو بسیار قوی باشه و برتر باشه و اگر محبت الله جل, جل روه در مقابل محبت, محبت فرزند قرار گرفت خانم قرار گرفت مال قرار گرفت زندگی قرار گرفت جان انسان قرار گرفت بر او فدا بکند ان الله اشترا من المؤمنين انفسهم واموالهم الله نفس های مرا خریده جسم مرا خریده و اموالهم مال های مرا خریده ازی خاطر مسلمان های موحد به خاطر محبت الله جل جلاله خون خود می جان خود قربان میکنند زندگی خود قربان میکنند چرا فقط میگه یکی الهی پروردگار ما خاطر رضایت تو خونم قربان میکنم در راه تو جهات میکنم خونم بریزه تا که تو راضی شوی مال خود زکات میده صدقه میده مسجد جور میکنم مدرسه جور میکنم برنامه های مختلف اسلامی چرا کلی کار کنی؟ بخاطر ازی که محبت الله جل جلو محبت خوده به الله جل جلو ثابت بکنم پس اول تقاضای توحید محبت الله جل جلی است که نسبت به هر کس و هر چیز محبت الله بیشتر باشد هر کس و هر چیز از مال خود به خاطر رضایت الله ترشیم از وقت خود به خاطر رضایت الله ترشیم پس مال ما به خاطر الله این صلات نمازم و نسکی و سایر مناسک ما تمام عبادات ما و محیا زندگی ما و ممات و مرگ ما لله رب العالم. ای اسم محبت واقعی که یک انسان مسلمان می داشته باشه. ای اسم محبت واقعی. ازی خاطر انسان مسلمان خاطر محبت الله جل جلوه تمام محبت را قربان می دومی تقاضای محبت الله جل چی چیست دومش؟ دومی تقاضای محبت الله جل جلاله است که صفات الله جل جلاله را به مخلوق ندهیم اگر ما با الله محبت داریم آیا کسی با الله جل جلاله حقیقتا محبت دارد آیا این محبت تقاضا میکنه که صفات الله جل صفات او خالقه خالق یک مخلوق بیچاره بته این مخلوق ملائکه هم باشه یا پیغمبر باشه یا ولی خدا باشه یا دشمن خدا باشه یا سنگ باشه یا چوب باشه یا جن باشه یا حیوان باشه ابدا بس محبت قوی با الله تقاضا میکنه که ما صفات الله جل جلاله رو به یک مخلوق نتیم و هست که ما واقعا محبت قوی با الله جل جلاله داشتیم اما کسانی که صفات خالق با به یک مخلوق میتن و میگن که ما با الله محبت داریم دوست خداست صفات تو با الله محبت داری صفاتش رو به یک مخلوق میتی بود محبت الله رو دارم ببین چقدر ببین که فاصله را. از کجاست تا و کجا؟ بس ما مسلمان ها و الله محبت داریم و محبت الله تقاضا میکنه که صفات الله را فقط برای الله جل جلو عقیده داشته باشیم و عملا او صفات الله را از مخلوقی تقاضا میکنیم سومی تقاضای محبت الله جل چی است که با مخلوق محبت افراطی نداشته باشیم که او را در مقام خالق قرار بتیم متاسفانه محبت های افراتی با مخلوق ای است که مخلوق از دایری مخلوقیت کشیده و با ای افرات افرات افرات, افرات محبت بسیار زیاد با مخلوق بالاخره ایره با محبتی که باید با خالق داشته باشیم شریک میسازند از این خاطر باز این مخلوق ببینید محبت خالق که محبت حقیقی است محبت خشوع هست بله توازوه هست بله محبت خوشو هست و توازو هست و محبت بندگی هست و محبت عبادت هست پس کس که به یک مخلوق سر سرخ خم میکنه، کنه به یک مخلوق میره می میکنه و رکوع میکنه، کنه پیش یک مخلوق حیوان زرکان می برای یک مخلوق عبادت می پس محبت الله را برای کی داد؟ برای مخلوق داد و ای مخالف محبت الله جل شدس و ای محبت افراطی و مخلوق هست چارمیش مخلوق را به اندازه توصیف و مدحنه کنیم که صفاتش مثل صفات خالق کرده بعضی کسایی یک مخلوق بسیار توصیف میکنن میکنن میکنن بلاخره این توصیف سیاد سبب چی میشه؟ سبب ازی میشه که این مخلوق به درجه خالق میرساند نصرانی ها ایسا علیه بسیار توصیف کردن از حد مخلوقیتی را کشیدن علا عیاض صفات خالق برازی دادن موسوی ها یهودی ها خدا موسوی ساختن. چرا مسلمان نمیگی موسوی موسا سلام مسلمان بود پیروای اینوار سلام مسلمان ها بودن تو چرا موسوی خدا میگیش محبت زیاد و قوی که با موسی علیہ السلام داشتن اتا نام دین خدا تغییر دادن به وضع دین اسلام که دین الله هست دین موسویت نام شدن وی ماندن یا موسویت ماندن مسیحیت ماندن یا رفتن سایی در مقابل قبرهای پیغمبرات رکو و سجده کردن و رسول الله صاحب گفت که لعن الله اليهود و النصارا لعنت کد الله جل جلاله جل يهود و یهود را چرا؟ اتخذ و گرفتن قبور انبیائهم مساجد قبرهای پیغمبرهای خود چی ساختند؟ مسجد سجدگاه ساختند. پیش قبر پیغمبر، پیش قبر ولی، پیش قبر شخصیتهای عالی خود رکو و سجده میکردن پس رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما و شما موحدین چی درس داده دا کسی که عقیده خود از قرآن و سنت می گیره؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مریم ای ما ای وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما و شما هست لا تطروني سیاد مرا مدح و توصیف نکنین هم صنا و صفت لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا تتروني زيادة مرة توصيف ناكنين كما أترة النصارى ابن مريم مثل كي زيادة توصيف كردن نصرانيها ابن مريم عزة إيسا عليه السلام ولكن خيطي كنينم أي بيغمبر اكرام صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم برقفك بلكن بل بغوين كي قولوا بغوين كي عبد الله ورسوله بغوين كي محمد كي هست عبد الله بنده الله ورسوله شست دو صفات خوب ما عبدالله و رسولش پس نباید مخلوق بسیار افراد شوه افراطی که اور توصیف بکنیم که صفاتش مثل صفات خالق شوه و یا با خالق پنجمیش با خالق شریک و مانند قرار ندهیم که آن را که آن مخلوق را مثل محبت خالق دوست داشته باشیم وقتی که به یک مخلوق سیادت محبت کردی و در مقابل زیروکو او کردی و سجده کردی و در گرد گرد قبر ازی گشتی و گرد قبرش تار بسته کردی بعد تارهاش آوردی گردنه اولادا انداختی و بر ازی قبر نظر گرفتی و بر ازی قربانی کردی و بر ازو الوا بردی و در زیر پایش خدا خم کردی و ازو با شفاسه اینو چی میگن؟ اینو میگن محبت افراتی و محبت افراتی سبب چی میشه؟ سبب ازی میشه که انسان از دایره عقیده اسلامی میکشه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله با خالق خصم نت ساختي شریک ساختي محبت الله بر از اي بر از اي مخلوق اي قه محبت كردي مثل كباي با الله محبت كني نهايت انسان مسلمان با عكس با الله محبت ميكنين محبت اطاعت محبت بندگی محبت خضوع و تواضع اما با پیغمبر محبت محبت دوستی آن و الفت پس این محبت با این محبت زمین و آسمان فرق داره از این خاطر تقاضای توحید امی است که با مخلوق شریک با خالق شریک نستازیم که او مخلوق باشه و با محبت با محبت خالق یک ششم محبت اعتقادی و بندگی را خاص به خالق بتیم اعتقاضای توحید محبت توحید محبت چی رو تقاضا میکنه؟ که محبت اعتقادی و بندگی خاص برای کی بتیم؟ برای خالق محبت بندگی و طاعت و خضوع و خوش و توازو و عجزی و به الله جل جلو است. و دیگه محبت های دوستی و سمیمیت که دیگه داریم با مغلوب افتم با دشمنان او محبت و دوستی نداشته باشی چطور ممکن است که انسان الله جل جلاله را دوست داشته باشه و با امرای دوستی الله جل جلاله دشمنش هم دوست داشته باشه الحب لله والبغض لله چی تقاضا را میکنه که تو هر کس که دوست می داشته باشی در چوکاتی که الله تو اجازه داده پس دوست الله دوست می داشته باشی به خاطر کی به خاطر الله جل جلهو. با دشمن الله را دشمنی دشمنت فکر میکنی چرا؟ بخاطر ازی که نمیشه که یک نفر هم با الله دوستی داشته باشه و با هم با دشمن الله جل جلوه هم بسی خدا فریب میتن و نباید خدا فریب بده با دشمنان او محبت دوستی نداشته باشیم با مخلوق ببخشید یک نقطه را که با اینجا ببینیم که یکی نیکی کردن است و یکی محبت داشتن است با همراه کفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الله جل جلاله میگه کسایی که شما را امرای جنگ نکرده یک کافر است مثل در افغانستان اون دو هست سکا هستن امرای ما جنگ نکردن و بخاطر دین امرای ما قتال نکردن و همچنان ما را از دیار ما خارج نکردن او در خانه خود زندگی میکنه ما در خانه خود زندگی انت بر که به از اینا بر و نیکی میشه به همرای از اینا اما با دشمن الله محبت داشتن که باز در عیدش اشتراک کنی برازو باز عیدش تبریکی بیتی در بطخانهش بیری و او مبارکی بیتی و برازو در تجلیل مجالس مشرکین آتش پرستا، بد پرستا و مخلوق پرستا، ایسا پرستا، موسا پرستا در مجلس از او و باز اونا را تحنیت بگوی، این مانای محبت می تویی حرام و ناروا هست اما نیکی کردن که اگر او مثلا یک کافر هست، اندو هست یا یک نصرانی هست بعضی مصری ها در مصر نصرانی ها هستند، یهودی ها هستند مردم های عادی هستند که زندگی می با مسلمان ها امروز اونا کردن کدام مشکله ندارند که اگر اون مریض می باشه برش دوامیدی یا مثلا موتر زده در موتر سوارش می تا پیش داکتر می برید ایگه خاصیت یک انسان مسلمان است اما محبته که تو باز بر او پایگاه جور کنی محبته که باز بر او جایی بتی محبته که باز بر او رو دوین خانه جای جایی بتی و بر احکام از رو تطبیق بکنی این یا در عقیده اسلامی در تصاد است راضی بودن به این چیزها با عقیده انسان تکر میکنه هشتمی که با مخلوقی به اساس محبت دوستی خالق محبت داشته باشیم دوستان الله جل جلاله دوست و دشمنانش دشمن بدانیم این است تقاضاهای توحید محبت اینال اینجا موضوع دیگه که مطرح میشه که خطر محبت و دوستی انسان در چی هست یعنی وقتی که ما با امروی یک دوست انسان دوستی میکنیم خطرش در چی هست اینال این خطر در دوستی و محبت افراتی انسان پیدا میشه پس خطر محبت و دوستی افراتی انسان وقتی ظاهر میشه که یک کسی یک شخص محبت مخلوق را به محبت و دوستی الله و رسولش یکسان بسازه ما مخلوق دوست داریم در چوکات محبت مخلوق اما چه وقت اینمی دوستی خطر پیدا می کنه که ما همی مخلوق محبتش را مثل محبت کی بگردانیم محبت خالق بگردانیم و یا محبت غیرالله الله را مثل محبت الله و محبت رسولش بگردانیم. ببینن، حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ عنہو صحیح بخاری در حدیث شریف از حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ عنه روایت میکنه عن نبی صلی الله علیه وسلم قال ثلاث من کن فیه وجد حلاوة ال ایمان سه چیز است که اگر این سه چیز یک انسان مسلمان داشته باشه بازی لذت و شرینی ایمان درک میکنه ایمان لذت داره شیرینی داره چه وقت این لذت و شیرینی ایمان انسان درک میکنه رسول الله که اگر سه چیز داشته باشید، سه چیز سبب میشه که تو حلاوت و شیرینی و لذت ایمان احساس بکنی مثل صحابه کرام اولش چیز ان یکون الله و رسوله احب اليهم مما سواهما اولش چیز اولیش یه است که الله و رسولش از هر کسی دیگه کرده بسیار تو محبوب در باشه الله و رسولش از خانه، از خانمت، از برادرت، از دوستت، از شوهرت، از برادرت، از اقاربت از مالت، از جانت، از وقت، از هر چیزی دیگه کرده یا تو محبوب در باشه وقتی که با امروز ایز این قسم یک محبت داشتی، باز لذت ایمان درک درگ می رسول اگرم صلی الله علیه وسلم میگه دو میچس و ان یحب المرء لا يحبه الا لله وقت تو لذت ایمان درک میکنی که با امرای کسی محبت داری یک شخص دوست داری لکن اور دوست داری محبتت به خاطر رضایت الله جل جلاله ببینین ما شما دوست اختیار میکنیم ما فکر میکنیم والا فلان نفر من دوست داشته باشم رو دوست داری بخاطر اینکه بسیار انسان با رسوخ است بسیار انسان چوکی بلند دارن به خاطر کهش محبت بعضی کسا میکنن بعضی کسا میگه من یک کسره دوست دارم به خاطر که چیری بسیار زیبا داره خوب خوش قواره هست همین قواریش خوشم میایه بعضی کسا میگه من یک دوست دارم به خاطر چی دوست داری به خاطر که او بسیار مالدار است بخاطر خاطر مالش به خاطر بخاطر به خاطر نسبش به خاطر چوکیش به خاطر قوّتش به خاطر قدرتش انواع دوستی هست لکن محبت ایمان لذت ایمانکی حاصل میکنه که من یک را دوست دارم به خاطر از یکی او دوست الله هست به خاطر الله رو من دوست دارم ما شما بلال حبشی را چقدر دوست داریم چرا به خاطر الله را دوست داریم اگن کافر ابولحب میگه ات و مقبول خوشچیره و صفیه چیره بود که کومای سرخ صرخ داشت ازی خاطر رو میفتن ابو لحب یعنی روش مثل آتش وار بلبل میکن لكن او مسلمان بد میدیدن اما بلال حبشی لبای کلان کلان داشت چری سیاه داشت حبشی بود لیکن مسلمان ها رو قلب خود جای میدادن این خاطر لذت ایمان وقتی اصل میشه که یک کسی رو دا دوست داشته باشیم خاطر از اینکه او دوست الله هست و یکی یک کسی دا دوست داشته باشه لا يحبه الا لله مگر او را دوست نداره بخاطر رضاید الله ثمی چیست؟ وَاَنْ يَكْرَحَ ان يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَحُ اَنْ آن قدر ای رجوع به کفر بدش بیایه رفتن به کفر و رجوع کردن به کفر و کافر شدن قدر بدش بیایه مثل که ای بد میبینه که در آتش زخم زخ یعنی وقتی انسان لذت ایمان میفهمه که رفتن به کفر و شرک و نفاق و مرتد شدن و گپای کفریی قدر بعدش بیایم مثل که ایراده آتش میپرد بعضی های بسیار قوی هستند مجرد که یک گپ کفری راشنون مثل که ده افتاده درد میگیره یا سبحان الله این لذت ایمان درک میکنه بعضی کسا سر پیغمبرش خم زدن میشه سر خم زدن میشه سر دین خند زده میشه این قرار خنده میکنه این لذت ایمان نمیفه بلکه لذت ایمان کی میفه وقتی که یک مجلس کفری باشه و بیدینی باشه ششتند و مجلس هم مثل چی فکر میکنه مثل زیگه در آتش باشه یک مسلمان از موسیقی لذت نمیبره چرا؟ میفمک ده این موسیقی و حاک است، الله ناراض میشه مجلسش مخالف مجلس الله هست بس تمین مجلس دلش اما بسیار حس تا حزب تکلیفه سیا چی چبات کردم این مجلس آمدم یک مجلس داخل میشه در اونجا مزاخه‌ای بی جا هست سر خدا الیاذ بلا سر پیغمبر سر دین تمسخر است فوراً این مجلس ترک میکنم و میبرم مثل که آتش در گرفته باشه یک جای پیغمبر توهین میشه یا تحقیر میشه استهزاء میشه این مسلمان مثل که در آتش افتاده باشه از تو مجلس خارج و خودش رفتن و کفر و به گمراهی را و در راه کفر و گمراهی حرکت کردن مثل افتادن در بین آتش میدن از این خاطر مسلمان هایی که واقعا لذت ایمان بردن و ایمان در قلبشان جای گرفتن در مجلس بیدینی نمیشینند. فلم ایندی بدش میایه خواندن ایندی بدش میایه رقص بدش میایه گمراهی ها بدش میایه سازها و عوازه هایی که در اون مخالفت الله و رسولش از بدشمه شراب بدشمه مجالس کفر بیدینی بدشمه چرا همه ای چیزا بدشمه به خاطر که رفتن در رای گمراهی و بیرایی و کفر و مسابیه ازی هست که ایتا احساس میکنه که در بین آتشی را انداختن مثل که در آتش کسی انداخته باشه اما انسان ازی خاطر اینی انسان ها هستند که لذت ایمان درک میکنن ای انسان هستند عزیز خاطر رسول اکرم صلی علیه و وسلم چی میه که و عزت عناس ابن مالک رضی الله علیہ وسلم چی میه که رسول الله صلی علیه و وسلم فرمود که لا یؤمنو احدکم یکی از شما مؤمن کامل شده نمیتنین مؤمن نیستین لا یؤمنو ایمان نارده حتی اکون احب ایلیه تا که ما که رسول الله هستم و فرمان الله را برات میگم تا که ما محبوب نباشیم با اونسان از ولدش، از اولاداش و والدی و از پدرش و ناسیش مینستامی مردم کرد. رسول الله صلی علیه و وسلم اگر دوست داشته باشی، امر رسول الله صلی علیه و وسلم با امر پدرت یکسان سار نمی فکر نمی قومت برات میگه که رقص باشه، رسول الله مگه نباشن. رواج میگه گمراهی باشن. از این خاطر میگه یک کسی که تا وقت که ما و رسول الله صلی دوست می داشته باشیم، رسول الله هم د احادیس رسول الله صلی الله و احکام رسول الله صلی الله و ارشادات رسول الله صلی الله علیه و آله قسم دوسا شبم شخص رسول الله صلی الله علیه و که از تمام از اینا از ای خاطر احکام بزنن محبتش بندازیش شوه که در مشکلات خطر خطردگی این محبت چیست که محبت ازی باز چی شوه محبت ازی عزی الهی حضرت تسیزم میم که وقت پروگرامم ام پورا هست به که در دا مشکلات در تا باید باید استعانت استخاذه است الله هست مخلوق استعانت بخواهی خطر خطر دانه و که این مهم است انشالا باز هم در برنامه بعدی خدمت شما دوستان قرار خواهد گرفتم و باکمان دیز رو بردان کردم و سلام علیکم و رحمت الله و ببرکاته